از پشت کوه تیره شب، نرمک، نرمک، سفیده سیم کن برامد، به سیم سفید بر فراز آسمان گسترد، سفیده سیم کن فراز تر رفت و اندک اندک زرگون شد، زرگ به فراز رفت و نیزه های زرگین روی به آسمان آوردن. نیزه ها بر جان ابرهای سیم تربان دادان گستری زرین پیداوردند. انبوه ابرهای های سیمین به زر در پهنه نیرگون آسمان به پرواز درآمدند. آنک کاربان پادشاه آسمان خوشید با گردونه درخشان از فراز البوز. راست بر خانمان آریایان فرو گفتند و فرزندان ابرها شاد و سباکبار بر خاک ایران باریدند و سبز و گل و درخت را بربولان باغ و آهوان درشت را به فراغ رسیدن نوروز ایران مجد دادند نروز ایران بر شما جست بود. جان و که این برتر اندیشه بر نکرد سفام از میکنم خدمت شما شنوندگان از رادیو فهرنگ و برنامه پنجرهای رو با من همید رضا هدایتی اراد هستم و دوباره خدمت شما عرض میکنم که نوروز رو بر شما مبارک باشه ما بیست و نهومه در خدمت استاد جنیدی بودیم امروز امشب که هفتم فروردین سال هست. باز هم من تو جا هستیم و تخار میکنیم و چقدر خوبه در این دوران هم دیگه رو می بینیم باز را سدیدنی کردیم حال شما خوبه در شما اینجا با... ش باشید تیررو خوش ن حالال که میبینم شما رو هر حال که شما میم اون چه قی این و که خوب چقدر زیما بود؟ این خود نوشتیم به دیسان و ا میکنم خدمت شما ما در برنامه بخشی درباره نوروز صحبت خواهیم که خیلی کوتاه و مطمئن بپردازیم به کار اصلی خودمون و همون خواندن شاهنامه هست شاهنامه ای که خود استاد جنیدی بینایش کرده مطمئن در مورد نوروز کفتنین ها زیاده هر از این آین باستان آین ایرانیان عزیز بگیم کم گفتیم خب استاد این دیده بازیده چیه؟ تو این دل این که مردم هم دارن؟ شاید همین هرونم اشستن با همدیگه دارن برمانه ما رو میشنن خب این یه آین ایرانیش از زمان فرانک که یعنی پایان مادر سالاری بود ها به دیدن هم میردن و اون کسی که وارد میشد به خانه نامش بود مهمان یعنی بزرگ به خانه و با اون طوری رفتاد میکنه که گویی و بزرگی است حتی اگر خورد سال میبود من یه بار بیاد دارم که در همین برنامه برنامه که در وقتی یکی پنجم سپنجان میبشیدوی بودم دیگه که دلیلی که الان بیاد ندارم تابستان ما تابستان هم برفتیم به روستا قرار بود که من بیام به شهر یک کاری بود نمیدونم چه کاری بود الان بیاد ندارم و این خیلی چیفتی برای که من, من حافظی خیلی خوبی داد ولی این یک مورد رو به خاطر ندارم و بعد مادرم به من گفت که برو خونه همسایه دار بزن بگم مادرم گفته من مادر تیزار باید بیام خودی شما من در خونه همسایه زدم باز کردن ای فری تو بچه یوزده ساده داروزده ساده دید توی اینا گفته بله مادرم گفته که من بیام خونه شما این درست خونه شما به به به همه خانواده قصیه یکبار به شما گفتم هشت تا برادر بودن اینا اهل اردبیل بودن و دوست خواهر خیلی خانواده بزرگی بود و اینا با یک شادمانی منو بردن تو کسیم من باورم نمیشد و دو روز که خانواده بودن مانند یه پادشاه از من پذیره کردن. این آین مهمان نوازی ایرانیانه به همین دلیلی که ایرانیان از دید و بازدید همدیگه لذت میبرن حالا من که از وقتی که فرزندم به جهان اینو پیوست تا بیشتر از اون از مهر فرزندان ایران بسیار برخوردار بودم و هستم و فکر میکنم بیشترین دید و بازدید در اون زیر اون صخفی پدیدار میشه که به بهسطلاه خونه منه و فرزندان ایران با مهر با مهر فراوان هر روز ست نفر پنجاه نفر هفتاد نفر پیزیزارو هم میان نه برای من که آرز میشه نه اونا بین میگن که برم بلکه خوب خب بین ما یعنی بین من به عنوان یک آموزگار نخستین مطلبی که من مطلب هست مهر و عشق و پیوند با شوگر. و متاسفانه کسانی که با فیافی عبوس با شاگردان خود کن رو میشن از این برای زدی برخوردارو نمیشم. یه روز یکی از شایدانو من گفت که استاد شما دونید که ما چقدر آشق شما هستیم من گفتم که ببینید شما شعر من میبینید و برخوردار میشید. ولی من 35 نفر میبینید که با نگاه بسیار مهربان دارم و من نمیدونید من بیشتر برخوردار میشم اما متاسفانه خب بسیاری از اصطابان این رو نمیدونن و در رو باز نمیکنم. اگر که در چی میری خودشون به پرواز در هر من دید بیرون که من نمیرم به چی دارم بعد اون, بله. اون چیزی که من بایشون کنم حال و هوایی در بونیادینش ناقور هست از من. در این ایام ای هم همین طور بود با صحبت هایی که با اشتراط جا کردم و منزل ایشون درش باز بوده و همه شاگردان اومدن ایشون کمتر رفتن بیرون منحومی کمتر رفتن ولی عزیزانی که دوست داشتن استاجون ایدی رو ببینن اومدن و ایدی هم گرفتن اینا من بگم ایدی دادن ایدی گرفتن خیلی خواست میدونین را ایسا چی ایدی دادن؟ به دخترانه فرانک من گل سرشور ایدی دادن چی خوبه شما خیلی در ندارن بگیم برامون، هم در این داستانی که سهراب به ایران حمله میکنه از که, که نامویی بر روستن که فرقاً حرکت کنگی هست. یکی اگر گل به سرده و ریاکلون مشروی. یکی تیز کن رو به مای یعنی اینکه که اگر تو همون باشی و گل سرشو به سرد گذاشته باشی حتی اینقدر درنگ نکن که اون گل رو بخوای بشوری این گل بخش از خواهد که ایران و تمیز کننده است به آلا... های سر رو و مو رو از من میبره و یک در حقیقت شادمانی به سلول های سر میده و موها رو خوب و درخشان میکنه که واقعا انسان بیاد همون دختران ایران مثل زود و مثل تمینه و مثل کتارون و گدااف گرفته و خب خوشوقختم که این حرکت رو در بلود آغاز آغا میدونم که هرکس که از این گش استفاده کرد. اون خودش خیلی دا شده. نه اون خودش یک که کسی میشه تبریق میکنه برای این و بلد. من آرزودم یه روزی دختران ایران دست از این شامپو ها که همه به حرکت آ در هم محیث کننده مو هست گله سرشود بهکار بورند که بخشی از خاک گرامی ایرانه و وقت خواهند دید که چقدر این کیسووان بهتر و آرامتر است و به خصوص پوست سر از آرامش برخوردار میشه بله من امسال به دکترای ایران گل سرشور دادم من استفاده کردم شنوندگان عزیز ز گله سرشوو خدا بیامرزه انوات هم پدر من برای ما میگرفت و ما استفاده میکردیم این موضوع مال وود میتونم بیا من ده سالم بود ه حتی دیگر چند ساله چند سال, سال پیش یک سال پیش بود دوستان جنویدی پدرم می از گرمسال می آوردن من نمیدانی که از جا، جاهایی که چیز هست، از اونجا می آوردم جنوبی داره همه جاهایی و, و اینوی مالیدی به سرمون خلاصه تمیز و پاک خب اصلا از این سرشور اگر هر جا دیدید بگیرید یه بار استفاده کنید مشتری خواهید شد این چیزی که ایرانیان برای تمیزی او چقدر اهمیت میدین ایرانیان چقدر اهمیت میدن به پاکی و من شنیدم اصلا گرمابه و همم مال ایرانیانه بله اصلا این از, اصل از ایران بوده و کشوره دیگه بعد از ما گرفتن اصلا مثلا در اروپا همم نبوده شما اگر بخونید در خاطرات خسین سفیر ایران که زمان فتحشان میری به فرانسه بعد اینکه این پیاده میشن و آرام میگیرن میپاسه خوب همون کجاست همون چی هست به همون یعنی تن رو بشوریم و ما تن چه نمیشوریم چطور شما چرک بشید تو آب میرید بودن تو ما میریم رود سین آب تنه بکنیم یعنی در سر تا سر اروپا گرماوه نبود فقط یه جا در, هندو... در انگلستان بود یه شهر بود نام بود که این چشمهای آب مدنی داشت مردم می اونجا اون رو مثلا تو آب نمی که تو آب می بعد این واژه بفترون از اینجا گرفته شد در زبان گرفتی یعنی سال بیشتر نیست که اونا همون دارن وقت اون سفیر ایران در فرانسه دستور داد که یک چیزی محفظه براش درست کنی که خودش بره تو خونه بره خودشو بشوره این موجب شد که فرانسوی این رویاد بگیرن کم کم استفاده کنند و بعد به نام وان از اروپا به ایران اومد و ما خودگون کرده ها خیال کردیم که این متعلق اروپا است در حالی که نه و همین اکنون هم اروپایی ها نوتر میترسدن یعنی میرن تو آب که سابون و همتون میان بیرون خودشون خوش کنن این سه بار آب کشیدن ها ویژه ایرانیان از زمان باستان از زمان جمشید و در کتاب وندیداد تا یادآور شده که بعد از اینکه پاک شدید بعد سه بار آب بکشید هنوز هم هر پیرزن و بچه ایرانی حداقل وقتی میخواد دستش بشه سه بار میشوره ده. یا اینکه به رو... یا هر چیزی رو آب بخوند کسانی که واسواس دارن خوب بیشتر میکنن و این کارم است برای که ما نبات اناهیتا رو بیازاریم یعنی آب زیاد مصرف کنیم همون سه کافیه بله پاکی متعلق به ایران بوده و حتی همساکانمون از چین چیزی برخوروانه بودن و گرمابه رو ما به جهانیان هدیه کردیم حالا چی شد از شما بندگان دستیدیم به اینجا من خواست رو میدو کنم در همین دید و های که ما شاهدش هستیم میبینیم که در همین روزان حتی هست می‌بینیم همین روزها و شبها اینجوری رو بگم میبینیم که لباسهای نو پوشیدن تمیز هستند این چند روز عید من خیلی کف کردم رنگهای مختلف لباسهای مختلف لباسهای شاد شادی بچه و حتی بزرگترها البته برای من لباس نو نخریدن اما برای بچه خریدم ما همیشه کنواده ها پدر مادر رو بچه ها رو مواظب هستند این خیلی مهمده قربام خانواده خیلی خوبی چیزی که در جوان قرب از بین رفته این طور باید باشه تا وقتی کودک است به ویژه دختران نیازه پیشتر دارن به اینکه که رو قرار بگیرن و این, این همی که کودک رو پیفت مون که هست و, و بعد با رو که خودش پیش خب من دیگه زیاد صحبت نکنم میخوام به پردازین به کار اصلیمون که خواندن شاهنامه توسط استاد فریدون جانایدین هست من تا قبل از اون من تلفن های برنامه رو خدمتتون مپرزن کنم دیویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج. و بیست دیویست و دویست پانصد و هشتاد و هشت و دویست پانصد و هشتاد و هشت و و و ما هستش www. به همطور عرض میکنم زیزانی که میدونم قرار اومید ایان و خیلی از شما زیون شاید تصید سفر در حالسیزان دنبالششاید صدای ما رو بششه اگر هواش بوده حتما ماهوای هاستبر رو در اون جای هر جایی جهان که بودید تونستید بگیرید و از طریق مفاری هاتبر از این تهقا در مییم که یه راهدیهشننیر برنامه ما این هستش از طریق ماواوری هاتبر شما میتونید صدای و فرهنگتون بخش غای بخواه. تو بگردید پیدا کنید رادیو فرهنگی رو و برنامه فرهنگی فرهنگ ببینید برنامه ما پنجره های رو به در خصوص امشب رو بشنید چون صحبت زیاده من یه سوال داشتم یه سوال کردند یکی از دوستان آه شفیعی راز مندگاری شاهنامه چه بود استاد راز مندگاری شاهنامه اول برای این که داستان راسته جهانی ها هست این تاریخ است که بر جهان آریایی گذشته و یکا یک قدیده های دانشی و بعد رویدادهای طبیعی مثل گرمه ها سرمه ها ها اینها را در خودش هست که تا وقتیگی میرسیم به تاریخ ایران در تاریخ ایران ها مرتبه که به بهترین وجه این تاریخ شده هیچ کتاب تاریخ ما نداریم در جهان که به این بر و گستردگی و راستی بوده باشه یعنی هر جا که خلاف ایران هم بوده میبینیم که سرایندگان یا لااقل فردوسی این رو گفته که ما باید اگر نیکه یا اگر بده ما باید داستان رو بشنویم در یکی دو جا این اتفاق افتاده جایی که قارن حمله میکنه به دژ سان و اونجا رو در حقیقت تصرف بگونه فردوسی فهمت بنی نیک و با داستان باید زدن یعنی اینکه که هیچ رو ما به نفع خودمون مصابره نمی کنیم. اگر هم اشتباه کردیم این اشتباهات در هست بعد از باقایی و روداتور طبیعی که در بخش اول هست و در حقیقت یافتوهای دانشی میرسیم به سرزمین ایران و سرزمین هایی که در ایران بودند که دیگه از منوچه رفه ایران آغاز میشه باز همه رودادها ها شده و, و راستی ضبط شده کمتر در طبان قادشه هم بوده که به نفع قدشون بخون سخن بگن مگر به زمان شخصانی که یک قدر دخت کردن به هنگام ما میرسیم اینا همه رو روشن میکنن و مهمتر از همه اینه که این داستان به زبان پرتنین و باشکوه فردوسی درآمد مانند یک آهنگ آسمانی بلند که در فضای ایران و بعد در فضای جهان پیچید داستان ایران رو رشته یه بزرگ از زبان مستاد استاد فریدونه جمعیدیم استاد بفرموی بیاقی یزدان اگر خطه داشتیج برنامه پیشین با اونجا رسیدیم که ایرانیان همه پریشان بودن از اینکه چرا چن روشی رو گرفته و آگاهی به زال رستن رسید که زال رستن هم اومدن به حال. از اینجا آغاز میشه در روی, روی دویستو هشتاد این شاخنامه شاخنامه ویدائش استاد هست صفحه که خدمتون درست کردم من شاهنامه ایشون هست اما شاخنامه های دیگه هم شما میدونم باز کردید و در فضای سمیمی ایدانه کنار هم نشستید و شاهنامه رو میبینید استاد در ایمون میخواند اصلا سر هفته را و رستن به هم رسیدن بیگام و دل بازرن چون ایرانیان آگهی آفتن همه داغ پیش بشتافتن یعنی پیش باز رستن چون روی چون رویشون بدید به پرده در آوای رستم شنید پرندیش از تخت بر پای خواست چنان پشت خمیده و کرد راست میبینید که شانشا قلند میشه به اطرامه زال و این چیزی است که در هیچی از دوره تارخی نزیر مندره دوران, دوران, دوران رستن دوران رستن, رستن. حد خاطر رستن, رستن. رو آفلین کرد بسیار زال که شادون دنی تا وقت ماه و سال به و مردی و مهر و رای که شاهید بادا همیشه به جای یکی ناسزا آگهی یافتن بگم آگهی تیز بشت آفتن. از ایران کس آمد محصول ایران جمعه. جمعه ایرانیانه. اون الیفانون مادر ما در یادوگار زریرانم داریم. موکه که اوشتاست میبینی که زریر ایران سپسانه رو شده. میگه از ما ایران کیس که برود و کینه زریران را بخواهد. پاسخ اینطوره هیچ عیر او آزاد پسقف نداد این تلفظ پهلویه یعنی هیچ ایرانی و آزاده پاسخ نداد مگر اون بستور که پسر ظیر بود بینین ایران در جمع با فنونه جمع میشه یعنی ایرانیان و با الفنونه نسبت میشه کشور ایران اینجا ایران یعنی ایرانیان از ایران کسو آمد که پیروز شاخت بفرمود تا پرده بارگاه نبردارد از پیش سالار بار. بپوش از ما چهره شهر یار. بزو گفت که پیر پاکیز مرز همه رای و گفتارهای تو نرز. منو چهر تا این زبان نیمی جز بیازار و نیکی گوان همان نام بر رستن پیزتن ستون مکیان نازش انجمن پیش نیاکان من کی خواه چو دستور فرخ نماوینده راه دیگر هرچی پرسیدی از کار من زنا دادن بار و آزار من به از اون یکی آورزو داشتن جهان راه نخار بگذاشتن یعنی آسان از جهان گذاشتن که بخشت گذشته گناه مرا درخشون کند تیرگاه مرا برد مرمرا و زین سرای سپنج نماند زمن در جهان در در رنج کنون یافتم هرچه دوستم ستکان بباید پسیجید کامد خرام خرام بکی دور دیگر گفتم وقتی که میخواستم که کسی رو دعوت کنن به مهمانی یه نفر میرفت بر اون نوید میبرد نوید در عوصه نیوعده یعنی آگاهی دادن نوید کسی بود که نوید مهمانش میداد رو بعد روز مهمانی حالا یا همون نوید یا کسی دیگه بنا با همهیت ممکن بود چند نفر رو بفرستن برای که اون مهمان رو بیان به مجلس سور و مهمانی اونها خرام بودن یعنی که مهمان با اون بخرامد و به مهمانی بیاد میگه برای من خراب اومد دیگه موقع رفتن به مهمانی منه اون مهمانی که خودش در نظر داره کنون یافتن باید پسیجید کامد خوهام سرگه مرا چشم بغنود دوش زی ازدن بیامد خوجسته سروش که برساز کامد که رفتند سر آمد نژندی و ناخفتند کنون بارگاه من آمد به سر قبل لشکر و تاج و تخت و کمر همین ش ایرانیان را شاخ همه خیره گشتن تو گم کرده را خیره یعنی خب بیهوده یعنی کسی که حتی وقتی کسی یه چیزی میگن خیره شد یعنی نگاه میکنه ولی دکتش کار نمیکنه آنه هنجون آره مازی در نگاه دونه این گم کرده هم یک تفسیر خیلی خیلی شگفتی داره که اینجا به ظاهر معنیش معلوم نمیشه اما در باطن در راستان ایران شما تفسیرش را که این, این کنکا به یه آهنی چی یکی میخواد تا برای ایرانیان پدید میاد که اینجا داره اشاره بشه. در آخرت استانیان امسال سیامان دیگه ندید. پوشکان بودید که امید خدا خواهد آمد و ما خواهیم خوان این چی؟ با سختیش میگم که اشغال هر دو تا، مدت دو تا، یه دو تا کارشو تامون کن و بروی آروم. بروی آروم. از سربازی دیدی؟ از سربازی شنید این سخون زال برپای خواست چون گفت که خسرو دادو راست ز پیر جهان دیگه بشنه و سخون چون کجر آورد رای پاسخ نکن این اگر من درو گفتم تو پاسخ نده برای اگر راس خوفتم باید پاسخ بده محسوس دیگه که گفتار تلخ هست با راستی ببندد به تلخی به کاستی میگه محسوسی که با اینکه که گفتا را راست تلخی در بعضی مواقع اما با همین تلخی در خواستی بسته میشه یعنی جلو یک ناراحتی رو میگیره یا جلوی یک پیش آمد بد رو میگیره نشویت که آزار گیریز من بزر این راستی پیش این هنجمن. اینجا دو بیت هست که اومده و من دو بیت رو توصابه میکنم که باید در یک بیت این ترتیب که من میگم کسانی که می می‌بینم که با آکولات نشون داده شده. چون کابوس دشخیم اندک خرط همین خواست که از آسمان بگذرد بدون بر وسی پنج دادمش همین تز گفتار بو گفتار گ یعنی گفتار سخن رو آغاز کردم. وسی پند بشنید و سودش نکرد از او بازگشتن پر از داغ چون شد یعنی وقتی گرد به هوا نگون اندر آمد به خاک ببخش شد بر از یزدان پاک بی آمد به یزدان شده ناسفاس سری کرد و, و دیگه پر پرخلاس به ایران کار دشوارتر میگه این کاری که کاری که تو الان داری میکنی دشوارتر از دونه سخت تره ایران بدی دل پروازارتر یعنی برهنگام تو بدی بیشتر شد و دل بیشتر از تو آزاد میبینه که تو برنوشتی ره ایزدی برنوشتن یعنی از میان بردن برقدر نوشتن از واجه نی ورط یعنی بایی نی وشت اومده که یعنی برگردن دن. شما وقتی که آسین رو لوله کنیم به طرف بالا این میگه که آسینو رو برنوشت چه لوله لوله میکن یا مثلا اونجا که منیجه میاد پیش رستم و آغاز میکنه به گفته ها رو اینها بهش میدیدی همی برنوشتی تو بازار من به این رو بود با تو بازار من رو دقیقا به هم زدی یعنی کردی در نبر بستی بازار من نوشتن این منیر داره که تو برنوشتی ره ایزدی، به کسجی گذشتی راه دنی، بی از پناه و بی از گرای که او دست برنی خوبی رحمه در این پند من یک به یک نشنبی، عبز تنفوز درست یک به یک نشنبی به احری منم، بدکونش من بگلوی بماند، در تو، نم آمد، وقت، نه اورند شاهی، نه تاج و نه تخت، خرد باد جان تورا رهنمای به پاکی بهماناد مغرد به جای شما برگردید به این سخنان ببینید که ظال چقدر قول امروز عدیبانه سخن گفته و جای انگشت به یک کلام او نیست مثل یک کسی که یه پیری که دهها سال کارش دانشندوزی و به فرهنگستان رفتن و کتاب نوشتن باشه سخن بگیرد که به یک سخنانش به و بسیار و بسیار معندیشه و پوامنزه سخونهای چا آمد به بون یلان برگشادند یک سر سخون که ما هم بران این کیم پیر گفت انجمن محیستان ایرانه همه رای میدن به گفتار بلحقه زال نباید در راست ایران خفت پراندیشه گفت به جهان دید زال به مردی بیاندازه اندازه پیمود سال اگر سرد گویم در انجمن جهاندار نفسنده این برد من اینکه گفت که تو از زمان اکبن تا امروز روز کمر بستی پیش نیاکان من و که برای ایرانیان به این دلیلی میگه تو احترام داری از ما پایگاه داری و سرد گفتن به تو درست نیست مخصوصا دیگر آن که روستم شود درد من. درد ویاویت برای ایران کزن میگه که من به تو سر بگم رستن درد بشه ما بودن قهلوان ایران درد بشه که از دردی که اون میداره نسخه ها آمده که دلت رو بگفتنه تو معلومه که اینجا چون اشاره به رستم دل او رو و خوشبتنه در شانومه فقط در شانومه بندوری مده ولا اکسر قلبی، و قلب او رایین یعنی قلب رستن رو ما نمیشکنیم این گفت زام پس به آواز سخت کهی سح روززار پیروز وقت سخخوا ها وستان شنیدم همه که بیدار بخشا پیش رمه من در باید رمه چند بار گفتم منمه کوه یعنی به گروه مردم طرق میشه. امروز بیشتر ما به مه به گ برای گوسمندان میگیم اما برای انسان ها هم بوده خوشبختانه در زبان لوری هنوز باقی بوده باشم مینی یه گرمه دختر آمدم و رمه و لابن هنوز به معنی مردم شنیده میشه مطبعا به صورت رم در واژه پاترم هم هست واجه پاترم یعنی مردمی که به وسیله یک پادشاه یا یک کس نگهبانی میشن این پاترم پهلوی در زبان فارسی گونه پاترم در اومد و بعد اینو بادرم خوندن در نمونه هم دیگه فرنگ و. بادرم اومده و از زبان افتاده اما چیز خوبیه به جای ملت چون شما میدین ملت اصلا یعنی پیروان یک کیش مثلا کن ملت عیسی ملت موسی ملت محمد ملت اصلا یعنی کسانی که پیرو یک کیش و یک شخص هستن ملت به در حقیقت توده مرد، مردم نمیخوره همونطور از موقع انقلاب مشخصه کم کم این واژه درست شد مثلا وقتی که یک سخن گفته میشد از طرف دولت میگفتند ببینیم که ملت چی میگه اون زمانم که مردم خیزش اره میگن خانه میخواستن قبل از اینکه انقلاب بشه فقط ادالت خانه میخواستن یه قاضی با عدالت رای نمیدادن مردم ادالت خانه میخواستن یه چیزی باشه که در هر حق مردم رو بگیره کم کم شده اون وقت می که خب دول سخن دولت این حالا ببینیم ملت چی میگه ملت یعنی پیروان یک دین پیروان مردم ایران که پیرو اسلام هستند کم کم این ملت به معنی مردم با گرفته شد در حالی که همون رمه و رم و پاتران درست خب اگر اجازه بدید این لیوم باز میام به صحبتتون شکر میونه کلامتون استاد جنیدی علیه ازم کنم برای شما شنوندگان علیه بر خدمت استاد که بده... <تصفح> <تصفح> درو در استاد جنیدی و مجری محترم شاید اگر جوانان ما ملی ما مانند مهرگان، اسفندگان و نوروز به درستی آگاهی داشتند به دنبال این جشت خارجی نمی عنجوش کليج جشمه که حالا بسید خدمت شماستون خیلیه اینا من دیدم میکار ای این کار داره میکنه متعصفاینه نمی دونستم آقای کریمی میخویم از نات اینکلژن در صفحه 1 من 31 پیش پیشنهاد مستند که به سوندن که تو به زربان بود سنجش زبان در زبان بودسون که ما ما که ما چند تا دومازش میکنیم همه این و همه این کار شماره ها روزوس ها بود این همه رو به اونجا شر دادم مط خب اون 5 تا چا شد به دست 5زار نفر بیشتر نرسیده. امیدداری بیشتر به دست مردم برسه آگاه بشن بدون که جشن ما چقدر پرمایه است اون دو نوز من درهتیفیبراتون ز گفتن می بینن که این اصلا نظیر نداره و جهان اصلا هیچ جشن رو به خاک پای نوزم نمیتونی بریم. این عظمت و این بزرگی جشن و بقیه جشن هم امیدوارم کم کم این طور باشی. ما در بنیاد نشابور کم کم داریم بعضی از این جشن رو در همون محمد کوچیکی داریم برگزار میکنه امیدوارم کم کم جوانان این با این جشن خیلی خوب که همه هم جنبه فرهنگی و مردمی داره آشنا باشن و دست و سیرانی غربی هم امید خدا. ام قرض میکنه با روز و بزرگاندیش و بزرگ مرد زمین استاد جنیدی دیدگاه شما درباره اثرگذاری عشقانیان و داستانهای ملی ایران زمین چیست؟ عشقانیان روان همشون شاد اینها بهترین دوره پادشاهی ایران بود که به آین کیانیان پادشاهی میکردند یعنی آین از زمان فیغوات تا پایان کمبوژیه کروش و کمبوجیه وقتیکه داریوش اومد کود و رو خود کنو کرد و پادشاهی رو خودکامی کرد در درحیق شیوه پادشاهی کیانی درهم نورزیده شد اما اشکانیان پس از بیرون راندن دشمنان پادشاهی تشکیل دادند که به شیوه کیانیان بود و اون بود که هر گروهی در ایران و هر تیره و قومی بر خودش یک پادشاه محلی داشته باشه و جمیع این پادشاهان با هم یک شاهنشاه انتخاب بکنند بنابراین همه مردم در اداره کشور سحیم بودند و کشور را از آن خودشون میدنستند نه از آن یک پادشاه یک پادشاه خودکام و همین دلیلی که شما می‌بینید در زمان اشخانیان سه بار رومیان اومدن تا تیسوون اما کشور را نداستند که تسخیر بکنند چرا برای که های مردم و استانها و شاهان محلی مبارزه کردند و رومیان را رو از چیزشون راندند و از ایران راندند. این شیوه پادشاهی فرخنده این بود که پادشاهی را از دشمنان ایران گرفت و ایران رو پاک کرد از وجود دشمنان و به دشمنان نداد ایران رو. به یک ایرانی دیگر علوفه نداد بلکه خودتو آرشام خودتو کرد. ولی به ایران دادند. یعنی به دشمن ندادند. و من بار دیگه هم گفتم چون مرتبا به صت شنوندگان این برنامه افزوده میشه که یک سندی باقی مونده که قسمت اولش در دست نیست ولی قسمت دومش دل الان مثل خیلی از اسناد ما در خارج از کشور هست پیداست که در بخش نخست نوشتند که یک اهالی یکی از شهرهای خوزستان نوشتند که ما اساس قانون رئیس شورای شهر تو مر میشتند نتونن خوب بشه و این ریشو شرما بسیار برای شهر ما خدمت کرده و ما ارزو که برای بار سوم هم انتخابش کنیم موتور نمیشه بر اساس قانون مگری اینکه شاهنشاه اجازه این، بده. اما این نامه هست که شاهنشاه میگه چون اینقدر که به خدمت کرده به مردم بخواد ما هم اجازه میدیم برای سوم بار انتخاب بشه. شما ببینید این که کی اتفاق افتاده 2000 سال پیش این چه کشوری بود این چه شیبی قانون بوده که اینطور کشور را اداره میکرده متاسفانه با قدرت اردشی محب شد تمام آثار اشکانی و تاکنون در چهار جا بیشتر شکست محرون پندندیسه و چیزی از اون پادشاهان نیک آین ایران باقی نمونده یکی در خودستان یک از سهنه ایجاد تراشیدن یکی در لاخمزار بیشنده اونجا هم همتون یکی در نیسای مرو است که امروز ترکمانستان خوانده شده در اونجا مقداری مهر رو مقداری سکی و پیدا کردن در افغانستان هم پیدا شده و یه اینی طوری شیر و ساسانیان بنیاد فرهنگ زمان اشخانیان رو از بین بردند که این غیر از این چند جا موید بله دو هزار سال چیزی نداریم سال و فردوسی هم میفرماید که از ایشان بهجز نام نشنیدن نه در نامه خسروان دیدن که کوتاه و شاخ و هنبیخشان نگوید جهان دیده تاریخشان شیوه اداره کشور اشکانی یک شیوه آرمانی است برای همه جهان و برای ایران برای روان و روان اون روانشهدان همه شاه سوال کردن با درود نام عزت خاص شهری در فارس چه معناست خب این خیلی روشن دیگه عزت خاص یعنی که خواسته باشه که این شهر آباد باشه مثلا یک اسامی هست مستر روست مستر مثلا الا الا این خدا اینو یا الا مراد یعنی خدا مراد اینش شده عزت خیلی روشنه. مفهومش روشن مفهومش روشنه روشن سلام خدمت استاد جنیدی من تیزش هستم چگونه شاهنامه استاد رو تهیه کنم و اثبات با بنیاد انرژی اوب داشته باشم من الان عرض می‌کنم اینو خوندم چون بسیاری از ها این رو خواستند خواستند سایک شماره خواستند سایک داشت هنوز بعد از نوروز برنامه پروژه دیگه اون نوروز تعطیل بود دار. مثلا دیگه از شیزبم دارو چیش تازه روتینو بون خبر بدیم دیگه در برنامه شما دو امید خدا و اعلن کنم براتون الان این رو داشته باشید امام دکتر شفیعی عزیز یعنی تلفن دورواج تلفن بنیاد بیجاور هستش دورواج یا همان تلفن 88 96 27 هشتاد یه بار دیگه این دوروار یا تلفن بنیاد نیشابور هست هشتاد هشت نود چهار یا فکس بنیاد نیشابور هست هشتاد و هشت نود و شش دو هشتادو سه شش 22 هل سه شما میتونید تماس بگیرید و شاهنامه رو فرم بفرماید ای که ایرایش استاد جنیدی هست ما در این بخش قبل که اینکه موسیقی بشنویم آه من تلفنهای برنامه رو ارز شما تماس میگیرید دوستان آماده میکنند با امید خدا پاسخ خواهند داد میشنوید زمان زیاد نداریم منتها سعی میکنیم اتفاق بیفته دویست و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 من از شما ممنونم همینجورم هم به منم کبلی گفتی یکی از پرامک که من الان دیدم خود از منم تعریف کرده استاد جانهی دید که اونو میخوام بخونم این هستش که گفتیم که بداییم پیداش کنم حالا میخوایی فرصت بگیریم ها نه بداش کردم با سلام و درود خدمت استاد بز... استاد بزرگوار فریزون جمهیدی که وجودشان باعث می شود که ما به ایرانی بودن بیشتر از پیش افتخار کنیم این بر شما مبارک باشه و خسته نواشید خدمت مجری توانا و آقای هدایتی برنامه بدون شما هم لطفی ندارد ممنون شاید <تصحیح> <تصحیح> خوبه می تو کاشت بجایی واجه ایت نوروز کشت چون نوروز خ در حرکت خوبی یک مفهوم خیلی خیلی بلندپز هفته پیش داریم بالاال گفت سپاس گذارم جا باید اززی ما در خدمت رسیم موسیقی و ششبین اد نفسی تاه کند آب میشید.